که از مهمت شغله ها به پاک کند نه که از مهمت شغله ها به پاک کند نه ای جوان تلاش تو سنگکی می یا کند ای جوان تلاش تو سنگکی می یا کند همیش همیشه جهل را دعا کند نه ای که از مهمت شره ها به پاک کند، ای که از مهمت شغلها به پا ای جوان تلاش تو سنگ و کیمیا گند ای که از مهمت شغلها به پا ای جوان تلاش تو سنگ کیمیا گند ای جوان پشتکار خیر زراہ علم و گیر ای جمانه پشتشاخی زوران علم و گیت عمر خود ها در مده سعی خود بیکار عمر خود ها در مده سعی خود بیکار با سلامت و ام ای که از مهم ننت شغله ها به پاک کند ای که از مهم ننت شغله ها به پاک کند ای جوان تلاش تو سندکی میاب کند ای که از مهم ننت شغله ها به پاک کند ای جوان تلاش تو سندوقکی میاب کند دشمنان دین این چگررگ در کمیین راحتان دشمنان دین در تن. جدا در رو در دی پاکیتان ای که از مهمنت شغل ها به پاک کند ای که از مهمنت شغل ح پاک کند ای جوان تلاش تو سنگکی میاب کند ای که از مهم شغل ها به پا کند ای جوان تلاش تو سنگکی میاب کند ای جوان هوشیار دائ به هوش باش ای جو دان لو شیار دائما به هم شو باش بر هزار زین و آن کاملا به گوش باش بر هزار زین و آن کاملا به گوش باش بحره دین خود موج پرخروش باش ای که از مهمنتت به پاک کند ای که از مهمنتت شعلها بپا کند ای جوان تلاشتو سنگ و کیمیا کند ای که از مهمت نتا چغله ها به پا کنند ای جوان تلاش تو سنگ کی بیاوند فخر و عزت و شرف در کتاب و سنت است فخر و عزت و شرف در کتاب و سنت است این گوهر شرف ار مغان رحمت است این گوهر شرف ار مغان رحمت است خیر بی غیر ای است ای که از مهمت شعله ها پا کند ای که از مهمت شعله ها پا کند ای جوان تلاش تو سنگ و کیمیا کند ای که از مهمت شعله ها پا کند ای جوان تلاش سنگ و می آیند خیز و ای جوان نگرد تو خیزش حسینیان خیز و ای جوان نگرد تو خیزش حسینیان اینیم دیگه شمشیری شکن پایه ی زیادیم دیگه شمشیری شکن پایه ی زیادیم نصره لیبی آیا منصوریه برا ای که از مهم ننت شغل ها به کند ای که از مهم شعله شغل ها پا کند ای جوان پلا ش سنگ کی می یا ای که از مهم نتر شغل ها کند، ای جوان تلاش تو سنگ و کیمیا کند موج خشم و خون بن چو پر دلان سف شکن موج خشم و خون بن چو پر دلان سف شکن زرب برستم زدن فدایان هر وطن زرب برستم زدان فدایان هر وطن ای خدایا ن یا زال ظلم خلقری شکان ای که از مهمت شعله ها به پاک وند ای که از مهمت شعله ها به پاک وند ای جوان تلاش تو کی کیمیا کند ای که از مهمت شعله ها به پاک وند ای جوان تلاش تو کی کیمیا کند پرچم پر افتخار دین را بوکن تو سر بالا پرچم پر خاردین تا بکن که سر بلند همچو سعد و جعفر و چون سحیب حق همچ سرز و جوه رو چون سه ای به پسن بازاسداریری بین و ماش دربال ح گزن ای, ای که از مهمتت مهمت شغله ها پا کند ای که از مهمتر شغله ها پا کند ای جوان, جوان تلاش تو سنگکی می یا کند ای که از مهمتتر شغله ها پا کند ای جوان, جوان تلاش تو سنگکی کی کییا گند ای جوان فلاش تو سنگ و کیمیا گند ای جوان فلاش تو سنگ و کیمیا گند تکبیر ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود